گرچه ما بندگان پادشهیم شاهیم پادشاهان ملک سوبگهی گنج در آستین و کیسه توهی جام گیتی نما و خاک رهی هوشیار حضور و مست غرور بهر توحید و غرقه گنهی شاهد بخت چون کرش میکند ماش آینه روخ چومهی شاه بیدار بخت را هر شب ما نگهبان افسر و کلهی گو غنیمت شمار صحبت ما که تو در خواب و ما به دیدگه ایم شاه منصور واقف است که ما روی همت به هر کجا که نهیم دشمنان را زخون کفن سازیم دوستان را قبای فث دهیم رنگ تذویر پیش ما نبود شیر سرخ موفعی اسیه این وام حافظ بگو که باز دهند کرده اعتراف و ما گوهی